خوب بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الاقناع فی الفقه الشافعی نویسنده ابو الحسن محمد ابن علی ابن محمد ابن حبیبه الماوردی میگن نسبتش به خاطریم بوده که فروشنده ماولورد بوده آب گلاب مثل قدوری خودمون خب در هر صورت الماوردی کتب زیادی داره دوازه تا کتاب تقریبا ازش نام بردند و میگویند شاهی خواست از چار مذهب مختصری کتابی نوشته شود ماوردی همینو نوشت و قدوری یعنی احمد ابن محمد القدوری بغدادی اون کتاب مختصر قدوری رو نوشت در هر صورت آنچه برای ما مهم هست خود حل کردن مطالب کتاب هست در مقدم خودش اینا رو توضیح میده مفصلا کتبی رو که داشته وساطی رو که داشته کتب زیادی رو داشته النکت الایون در تفسیر قرآن الحاوی حاوی کتاب فقهیه که خودش میگه من در چهار هزار برگ اونو نوشتم مخت... این مختصر هست اقنما در واقع مختصر همونه خودش نوشته اینو کتاب دیگه ای داره نام الاحکام السلطانیه ادب الدین و ادب قاضی و کتاب های مختلف زیادی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الداعی الى طاعته والموفق لهدايته الذي عمر الذي امر عباده بعبادته وبين لهم احكام شريعته وصلى الله على محمد النبي وعلى اله وصحبه ستایش الله روك دعوة دادي وتوفيق بهدايتش رو که دعوت به اطاعتش داده و توفیق به هدایتش اون ذاتی که بندگانش رو دستور به عبادتش داده و احکام رو برای آنها بیان گردانده است و سلام و درود بر محمد مصطفی و اله بقى هذا كتاب اختصرته من مذهب الشافعي رضي الله عنه إن كتابيس كمان مختصرش كاردام تبقى معسابه امام شافعي رضي الله عنه تقريبا لعلمه وتسهيلا لتعلمه علمش رو تقريب نزيق مكونه وتعلمش رو تسهيل وآصال من مختصر ليكون للعالم تذكرة براي عالم يعدى غريبا شدو وللمتعلمي تبصرة وراي فراغيرو آموزا دهام بس تبصري باشي وأنا أسأل الله تعالى توفيقا لما توخيته وعونا على ما نويته وهو حسبي ونعم الوكيل ومن أسأل الله تعالى توفيق شرومي خهم بانتك نية شركة يعني قصد شركة منذول نوشتنين كتاب و می خواهم کمکش رو برانچه که نیتش رو کردم و او مرا بس است و او بهترین وکیل است. بس توخیتو یعنی قصدش رو کردم ابتدا هر کتابی کتابه طهارت میاره کتاب طهارتی قال الله تعالی وانزل من السماء ما انطهورا الله تعالی فرموده و نازل کرده از آسمان رو که مایه یه فخص الماء الطاهره به الله متعال فقط آب پاک رو مخصوص پاک کنندگی گردانیده است تطهیر با به تفعیل یعنی پاک کردن طاهر یعنی خودش پاک بودن الله متعال کدوم آب رو برای پاک کنندگی خاص کرده؟ آب پاک رو. آب طاهر رو فَكُلُّ ما نزل من السماء او نَبَعَ من الْأَرْضِ طاهر مطهر و این سُخِنَ او عَجَن میگه پس هر آنچه که از آسمان نازل شده است هر آنچه چه برف باشه چه تگرگ باشه چه باران باشه هر آنچه که از آسمان نازل شده یا از زمین جوشیده است بیرون اومده است طاهر هست و مطهر هست و چه که هم گرم کرده شود و اگر چه که هم تغییر کرده باشد و ما حمیه بالشمسی فی الاوانی مکروه و انتحره. انجه که گرم کرده شود با خورشید، با چی؟ در زرفها مکروه هست البته کراهتش جهت ایلالی است که میگه مثلا امراض سبب امراض میشه سبب چی میشه میگه هر هرانچرا که گرم شده باشه به شم با وسیله شمس در ظرفها مکروه است و طهر اگرچه که پاک کننده است اگرچه پاک میکنه وَكُلُّ مَعْتُصِرَ من شَجَرٍ او ثَمَرٍ او وَرَقٍ لا يَجُوزُ اَن يُتَطَهَّرَ بِهِ من حدث ولا نَجَسٍ و هران چی که فشورده بشه از درخت یا میوه یا برگ جایز نیست که پاکی حاصل بشه به وسیله آن حالا چه از بیوزوئی و جنابت حدث فرق نمیکنه کنه اصغر و اکبریش از نجاست میگه اون آبی که از درخت گرفته بشه از میوه رو میفشاری ازش چی خارج میشه؟ آب یا برگو میکوبی ازش چی خارج میشه؟ آب میگه این آب جائز نیست که باش پاکی حاصل بشه برای حدس و همچنین برای پاک کردن نجاست بس از بین بردن نجاسات نمیشه با این نوع ای آب جایز نیست و اذا اختلت بالمائی مضرورون او مائعون کالخلی فهو مطهر ما لم يتغیر فان تغير تغیر لم يطهر حدثا ولا نجسا و زمانی که مخلوط شد با آب چیزی مضرور پراکنده کوبیده شده مانند زعفران از چیزی پراکنده پخش کوفته شده مانند زعفران یا مایع مانند سرکه میگه فهو متحرن مالمی تغییر اون آب مطهر هست پاک کننده هست ولی تا مادانی که تغییر نکرده فا این لم يطهر حدفن ولا نجسن اگر تغییر کرد دیگه پاک کننده نیست پاک نمیکنه حدس رو یعنی نمیشه با وضو گرفت نمیشه باش غسل کرد از جنابت ولا نجسا و نمیشه نجاستی رو هم پاک بکنه واذا تغير الماء بما لا يخلو الماء عنه غالبا من طين او من الخشب او ورق شجر كان على تطهيره و زمانی که تغییر کرد آب به وسیله چیزی که غالبا از اون چیزا خالی نیست زمانی که آب با اون چیزایی به وسیله اون چیزایی تغییر کرد که غالبا از اونا خالی نیست از جمله گل و جلبک و چوب و برگ درخت کانه علا تطهیر اون آب بر پاک کنندگیش باقی هست یعنی پاک کننده هست علاوه بر این که پاک هست بر پاک کنندگیش هست و کذلکه لو تغير بالدهن لتمیزه و همجرین اگر آب با روغن میگه تغییر کرد بر پاک کنندگیش هست زیرا لتمیزه بخاطر که آب جدا و روغن جدا با هم کامل قاطی نمیشه هند و اذا استعمل الماء في طهارت من حدث او نجس لم يجز ان يستعمل ثانیتاً دقت داشته باش میگه زمانی که استعمال شد آب در طهارت از حدث یا نجاست یعنی شما اومدین آبو استعمال کردین که حدثی رو از بین ببری یا نجاست رو از بین ببری میگه جائز نیست که استعمال بشه بار بعدی در حدث و در از بین بردن نجاست شما یه بار میگه وضوع گرفتی دیگه نمیتونی دوباره با این آب کار کنی وضوع بگی یه بار که نجاستو باش از بین بردی بار بعدی نمیتونی باش نجاستو از بین ببری خب ولی اینجا میگه در پاورقی ما از اینجا بعد پاورقی ها رو میخونیم میگیم در تعلیق اومده دیگه اسم تعلیق زننده رو نمیگیریم چون خزر محمد خزر این تعلیق روش زده ولی در تعلیقات کتاب میاره که اهل ظاهر یعنی ظاهری ها میگوند که آب مستعمل هم پاک هم پاک کنند هستند. البته فقط ظاهری ها نیستن مالکی ها هم این نظر رو دارند. یکی از فوقه دیگه این نظر رو هم داره و قول صحیح هم قول اهل ظاهره در این مورد انسان سال میاد و مالکی ها موقع میاد دلشون رو، بررسی میکنه در هر صورت ما نیومدیم که قول ترجیح بیدیم عبارت کتاب رو حل خواهیم کرد ولی این اختلاف رو در پایین آورده بود هم چیز جالبی بود پس میگه با آبی که ما استعمال شده است احناف هم آب مستعمل رو جایز نمیدونند با شراعت خودش که مفصل در کتبشون میارند خب وإذا استعمل الماء شيء نخلديم وأي نجاسة وقعت في الماء فغيرته صار بها نجسا مجهر نجاسة دار آب افتاد وأن آب رو تاغيرداد أن آب نجس ميجرداد أن آب جميشي ولا ينجس إن لم يتغير وكان قلتين قدرهما خمسمائة خمس رطل بالأراقي. وینجو صو، یعنی کاند دونه هوا. خب دقت کن، میگه هر نجاسی که در آب افتاد و آب تغییر داد، اون آب چی میشه؟ نجس میشه. اگر تغییرش داد، مطلقاً اون آب چی میشه؟ ولی آب نجس نمیشه اگر آب تغییر نکرد. و به اندازه دوقل بود. که هم اندازش میگه 500 رطل عراقی. تقریبا من تو کتابی نگاه کردم 160 و, و لیتر چون اعشافعی ها آبو به قلت و کسرت تقسیم میکنند مثل احناف ولی خب قلت و کسرت در نظر فقهات مختلفه مثلا احناف میگن در درده باشه و مقش بگونه باشه که زمانی که آب تکن میخوره زمین دیده نشو این مسائل ولی بهترین نظر نظره مالکی ها هست که آب و به کسرت و قلت تقسیم نمی کنن میگن آب چی کم باشه چیزی زیاد نجاست درش افتاد تغییرش داد آب نجسه تغییرش نداد منظور رنگ و تم و بویشه و از شاف شافعی هم امام غزالی میگه ودت تو ان مذهب شافعی فلمیه کانه که مذهب مالک میگه من دوست دارم که مذهب شافی ها در این مورد مثل مذهب مالکی ها بی بود خب پس میگه هر نجاستی که در آب افتاد اون آب تغییر داد اون آب هم با اون نجست نجس می و نجس نمیگردد از زمانی که آب تغییر نکرد و قله بود. چون و می سو امکان دونه اگر پایینتر از قله بود وا اینکه تغییر نکنه شافیه ها میگن چیه؟ نجسی مثلا یه آفتابه وا اینکه یه قططر توش بیفته ولو این کاس تغییر نکنه؟ آب نجس میشه اما اگر دوقله بود، زمانی نجست میشه که تغییر کرد یعنی رنگ و تهم رو